و عليكم السلام و رحمت الله و بركاته بله برادر دربوبی بي فرض بین قرآن و حد... حدث قدسی و حدث پرسان شدن بله برادرم اولاً قرآن این کلام الله سبحانه و تعالی میباشد لفظاً و معنًا معنًا یعنی که هم هم لفظش هم معنی از جانب الله سبحانه و تعالی است هر یک حرفی که در قرآن است از جانب الله سبحانه و تعالی میباشد همچنین معناش از جانب الله سبحانه و تعالی میباشد و در فضل این قرآن پیامبر خدا صلی الله علیه و آله میگوید هر کسی که حرف از این قرآن بخواند 10 ثواب در نامه اعمالش نویشته می شود این هست فضل قرآن و این هست قرآن یعنی آیت قرآن و دویم حدیث قدسی چی رو می حدیث قدسی آن چیز رو می گین که پیانبر صلی اللہ علیه و سلم برای ما از قربردگار نقل میکند. می کند می گوی که قول الله یا که قول الله الله سبحانه تعالی گفت یا الله سبحانه تعالی می گوید که با طریقی الهام با طریقی و پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم راستی راکی است این است این حدیث قدسی میباشد و قرآن با طریق وحی با پیغمبر صلی الله علیه و آله و است اما حدیث قدسی با طریق الهام یا با طریق خواب با پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌رسد تا چهندرم میان چی حدیث قدسی فرقیت در بین حدیث قدسی و آیه چی است و قرآن یعنی که حدیث قدسی استارو که در اوایت قران گفتیم هر هر 10 ثواب دارد حدیث قدسی اینطور نیست یعنی که امسلی اوات قران های هر 10 ثواب ندارد یکم بعد دوم اوات قران را میشود در نماز خواند و حدیث قدسی را نمیشود که در نماز خواند حدیث قدسی را در نماز خوانده نمیشود برادران پس این فرقیت بین هر دو این است پس این است چی اوات یعنی و حدیث قدسی. إن شاء الله فرقیتش معلوم شد و سیوم حدیث چی است؟ حدیث اصلا سخن نبوی صلی اللہ علیه وسلم حدیث گفته اصلا حدیث می شود صحیح و ضعیف و با خودش دارد حدیث مقبول و حدیث غیر مقبول و یعنی که حدیث چند گروه می اما عموم در عموم حدیث سخن نبوی صلی الله علیه وسلم ها می اما اون سخن اوی با پیامبر صلی الله علیه و سلمی که سندش می رسد درست خاصی اوناست نیست یا یعنی که حادثه صحیح است یا ضعیف است پس این فرق میکنه اما در عموم حدیث سخن های رسول اکرم صلی الله علیه و سلام رو می اما بو ما درجه آثار داریم دیگر اوثور اوثور از چند دیگه رو آثار می آثار یعنی که از صحابه یعنی که حارون کورک صحابهو کرد دغه عالموی گذشته از اون قاوله گفتگو هسته یان کارҳои سخنوی خوب برای مردمو یگان نصيحت پیشکش کردگی هسته یان عملي کردگی هستن که از قران و سنت بیره نیستانده این چه زهره چې میګن اوثور میگن؟ یعنی میگن میګن چې اوثور یی اصحاب یی اوثور عالموی گذشته یی اوثور وقتی گفتن اوثور غیر حدیث است و بعضه علما هم شنین اوثور را اما در عموم اوثور یی عملی اگون بزرگان دیگر میباشد غیر از پیامبر صلی الله علیه و سلام اما حدیث این سخنان نبوی صلی الله علیه و سلام میباشد همچنین بعضی از خانون صحابه به نام حدیث مشهور هستند اما اصل اونها آثار هستند لیکن بسیار ادمها چیکارش میکنن همچون حدیث میگن مثلا کره ازت توبو کردگی کره ازت عمر کردگی از خچون اینها آثار میشن که آثار اونها هستند اما بعضی ها همینها رو چیکار میکنن همینها را حدیث میگورن و به حدیث گستانش معنی غلط و خطا نمیباشد فرض این را در دارم بر دار بوی آیاتی و حدیث قدسی و حدیث و آثار الله جوزی خاتمه ته بردارم و بارک الله فیکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته